حکایت یکی را از مشایخ شام پرسیدند از حقیقت تشوّف گفت پیش از این طایفه‌ای در جهان بودند به صورت پریشان و به معنی جمع اکنون جماعتی هستند به صورت جمع و به معنی پریشان چو هر ساعت از تو بجایی رود دل به تنهایم در سفایی نبینی، ورد جا و مال است و زر و تجارت، چو دل با است خلبت نشینی.